نتیجه گیری چگونه از همین امروز دست به کار شویم؟ من در پایان هر کتابم به خوانندگانم توصیه می کنم که دست به کار انجام آنچه آموختند بشوند. اما اکنون این توصیه جدی از هر زمان دیگری است. شما این کتاب را خریده اید زیرا با تنبلی و عادت به تغییرق انداختن کارهایتان مشکل داشته اید و یک واکنش عادی از سوی کسی که مشکل شما را داشته باشد از این قرار است. اطلاعات ارزشمندی بود. حتما از هفته آینده دست به کار می شوم. این کار را نکنید. من هم به مانند شما با مشکل به تعویق انداختن کارها دست به گریبان بودم و آنچه مرا از این وضعیت نجات داد تنها خواندن یک کتاب نبود. بلکه اراده ام برای اجرای ایده های زده بود. من شما را هم به همین عزم جزم توصیه می کنم. تا کنون 23 راه برای مبارزه با تنبلی آموخته اید. بگذارید یک بار دیگر آنها را مرور کنید. یک از قانون 820 برای شناسایی کارهای مهم استفاده کنید. دو هر فعالیتی را به یک هدف دال سین دال ارتباط دهید. سه ایده هایتان را هر آینه که به ذهنتان خطور می کنند و ضبط کنید. چهار نظام چهل پرونده را در زندگیتان پیاده کنید. پنج برای هر پروژه چند مرحله یک فهرست بنویسید. شش برای فعالیت های فهرست بازبینی تهیه کنید. هفت فعالیت های همانند را در یک گروه دسته بندی کنید. هشت تمام فعالیت ها و پروسه را یک به یک انجام دهید. نه. هر هفته چند ساعت را به مرور هفتگی اختصاص دهید. ده برای بررسی دقیق فعالیت هایتان بر روی آنها مرور ماهانه داشته باشید. یازده به فعالیت‌های کم ارزش نبگویید دوازده موفقیت هایتان را ثبت و پیگیری کنید سیزده روزتان را با مهمترین فعالیت یعنی میمتفه آغاز کنید چهارده فعالیت هایتان را با روش ابجد اولویت بندی کنید پانزده با استفاده از تکنیک‌های زمانبندی در خودتان حس فوریت و استقرار انجام کار ایجاد کنید. شانزده. هدف‌هایتان را با جمعی از مردم در میان بگذارید. هفده. فعالیت‌هایتان را از کوچکترین بخش‌های آنها آغاز کنید. هشده. با هر قدم کاملی که به سوی پیشرفت برمیدارید دارید به خودتان جایزه بدهید 19. مهارت‌های مرتبط با هایتان را گسترش دهید. 20. با گوش دادن به سخنرانی‌های الهامبخش برای انجام کارهایتان انگیزه پیدا کنید. 21. وقتی دچار انگیزگی شدید، از تکنیک تجسم و تصور استفاده کنید. 22. در فرایند پیشرفت زندگیتان صبور باشید. 23 برای آموخته کردن خود به هر یک از این عادتها از روش چالش سی روزه بهره بگیرید. توصیه من. توصیه من به شما این است که همین الان و درست در همین لحظه یکی از عادتهای این کتاب را برگزینید و کارتان را آغاز کنید. جدی میگویم، من همانقدر که دوست دارم که شما از کتابم خوشتان بیاید و به خرید سایر کتاب هایم شوید شوید، همانقدر هم آرزومندم که همکنون با برگزیدن یکی از این آدتها بهترین بهره را از زمان و هزینهی که صرف کرده اید ببرید تنبلی نباید کنترل زندگی شما را در دست بگیرد قلبه بر تنبلی و تبدیل شدن به انسانی با فعالیت پربار و سربخش بسیار آسان است. باید عادات ضد تنبلی را فرا بگیرید و در برابر مقاومت اولیه که هنوز هم شما را به تنبلی وامی دارد بیستید. البته اشکالی ندارد که گاهی بلغزید و حتی شکست بخورید. مهم آن است که به سختگوشیتان ادامه دهید. به یاد داشته باشید که پشتکار یکی از رموز راستین موفقیت است. تنها کافی است تا بر موفقیت ها و پیشرفت های کوچک روزمره تان تمرکز کنید و آنها را گرامی بدارید و به استقبال یک زندگی هیجانانگیز و پربار بروید. زید و این همه را ممکن سازید. اس